بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء و سيد المرسلين و آله و صحبه اجمعین و بعد هشت من درس از درس هيا سوري يوسف آيه اجدهم فارمودي الله جل شانه وجاؤوا على قمیصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاؤوا بردران يوسف بردران يوسف راوردا با خونی دروغین بزیرا سر زدن خونش رو ریختن روی پیراهن یوسف آوردن اون پیراهن رو نزد پدرشو و گفتن ای پدر این یوسف و این خونش که گرگ ریخته پدر تعجب میکنه نگاه پیراهن میکنه میگه چه گرگ با مروتی مهربانی پیراهن سالم دست بهش نزده اون گرگ چطور اون یوسف رو کشته و به قطر رسونده دلیل برهانی که اووردن پیراهانی سالم دست نخورده ولی خون روش هست. چطور گررگو را دریده ولی پیراهن سالمه دستش نخورده فراموش کردن میگن که دروغک هم حافظه است اینجا به فکرشون نرسید که این پیاهنه رو حداقل پاره پاره بکنن پیراهن رو سال موردن خونی روش ریختن دادن دادن دست پدر پدرم هم جوابشون میده قالبل سووللت لکم فسکم امررا این امری هست که خودتون تدویر کردید این برنامه فیلمی که خودتون چیری دروغ یعنی. کل قرائن نشون میده که شما دارید دروغ میده چه اون اشکتون چه اون ادعاتون که یوسف رها کردیم و بعد گرگ اومده و رو خورده اینا همه دروغه جسدش کو سخونش کو هیچ دلیلی و برهانی شما ارائه ندادید بر ادعای خودتون بل سولت لکم انفسکم امرا این امری که شما دست جمعی مرتکبش شدید با هم این برنامه رو چیدید یک نفر مقصر نبود همه جمع مقصر بودن شاید در این جمع کسانی بودن که سکوت اختیار کردن یعنی شاید سردستهی داشتن و بقیه هم تابع شدن اونهایی که ساکت میشن بر منکر محسوب بر اون کسی که اون منکر را داره انجام میده همه اینجا خطاکاره من اینجا بحثش جا نداره که بازش میکنیم ولی انشاءالله به سر فرصت بازش خواهیم کرد جای گناه به جمع برمیگرده هر چند شاید یکی از اونها سابکت بوده باشه غالبا سوالت لکم عنفسکم امر فصبر جمیل. والله المستعان فصبر جمیل، صبری زیبا این زیبا از جمال میاد زیبایی میاد چرا صبری زیبا یعنی صبری بدون گلایه بدون بیتابی چیزی جز صبر ندارم در مقابل این کردار ناشایست شما صبری زیبا رو پیش خودم گرفتم وقتی که وقتی که اینجا یعقوب علیه السلام به فرزندانش داره میگه من صبری زیبا را پیشه خواهم گرفت یعنی دل خودم رو از شما دیگه میکنم دیگه از این به بعد بعد از این کار چون این کار رو کردن برای اینکه به پدرش نزدیک بشن ولی که نتیجهش برعکس بود نتیجهش این شد که صبر زیبا را پیش بگیره و از این به بعد یعقوب به خودش و عبادت و طاعت و عبادتش بپردازه صبر بر عبادت و طاعت الله داشته باشه این صبر زیباست انسان وقتی صبرش زیباس که اون مصیبت اون درد درش تاثیر نذاره و بچسبه به عبادت و اطاعتش چون صبر ما داریم صبر در مقابل قضا و قدر تلخ الهی اصل صبور باشه بیتابی نکنه اینه نوع صبره و صبر داریم بر طاعت و عبادت الهی انسان استقامت ببرزه پافشاری بکنه که عبادت و رو به نحو احسن انجام بده و صبرش از انجام ندادن معصیت و گناه اینجا این صبر زیبا رو برای خودش پیش میگیره یعقوب علیه السلام توقع داشتن یوسف را دور بکنن از پدر خودشون که بهش نزدیک بشن یعقوب علیه السلام مکر و حیله و نیرنگ از فرزندانش میبینه و تصمیم میگیره که دیگه این فرزندان باید ادب بشن باید نکوهش بشن و فاصله میگیره از فرزندانش با این حرفش سخنش و با این محکوم کردنشون بل سولت لکما افسوکم امر این امریک خودتون تدبیر کردید پس من در مقابلش صبر زیبا رو پیش میگیرم والله المستعان و الله هم کمکم خواهد کرد یاریم خواهد کرد این مسئله مسئله عبودیت و استعانت تلبی از الله ما هر نماز تکرار میکنیم در سوره فاتحه ایفده وار در نماز فرض غیر از نمازه نافل ایاک نعبد و ایاک ایا ایاک نعبد تو رو میپرسین با سب کردن و استقامت و پایداری بر طاعت و عبادت ایاک نعبد عبادت نیاز به سب داره باید انسان زود بخوابه که زود بیدار بشه نماز صبح در جماعت بخونه از خوابش بزنه این سب میخواد نماز عصر همینطور اینطور این دو تا نماز که سخت بر منافقین سب نداشتن بر این نماز انسان نیاز داره که صبور باشه خب این عبادت ایا کن و ایا کن استعین در تمامی مشکلات و مصیبت ها و تخاصدها فقط تو بر لاهای یاری می یاری تلبدن کمک خواستن بدون واسطه یاک یعنی فقط از استو بار الله الساعد می تلبیم. والله المستعان اینجا بندگی و عبودیت یعقوب نسبت به الله الله مرای یاری خواهد کرد کمکم خواهد کرد الله هست که فریادرس منی والله المستعان و علی ما در مقابله این چیزی که شما برنامه‌ای که چیدی رو فیلمی که درست کردید برای خودتون داستانی که الان دارید ارائه میدید الله یاریم خواهد داد یعنی در این مصیبت پیروز غم شد چون قبلا یوسف خوابشو تعبیر کرده بود گفته بود پدرش میدونست ولی خب انسان در مقابل مصیبت ها در مقابل رنج شاد از پا در بید. حتی اگر پیامبر خدا باشه رنج برد غمگین شد در مقابلش نابینا شد همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم بچشش وقتی که ابراهیم فوت میشه روی پایش اشک از چشمای رسول الله صلی الله علیه و سلم جاری میشه خب رسول الله صلی الله علیه و سلم های پی در پی بلا غیر از اون شکنجی هایی که میشد آزاری میشد شش تا از فرزندانش را در حیات خودش از دست داد ابراهیم و عبدالله و رقیه و ام کلثوم و فقط فاطمه موند که شش ماه بعد از حیات رسول الله فوت میشن بچه بود فرزندش ابراهیم علیه السلام روی پایش اشکش سرازیر میشه رسول الله صلی الله علیه وسلم رو بهش می میگن که تو هم رسول با این مقامت عشق میریزی فرمودن ان العين لا تدمع یک بچمون از دست بدیم انگار قیامت ما برپا شده. خیلی سخته شش تا فرزند از دست دادن پی در پی با زمانی اندک دو سال و یک سال سخته رنج قال ان العين لا تدمع وان القلب این مقام بالای رسول الله صلی الله میخواد به یک جایگاهی بالای او را برسانه یک حکمتی داشته از این کار و اینجا هم این درس یعقوب هم یک حکمتیه که الله داره از حکمت غیبش به با ما بازگو میکنه درست یوسف برده شد فروخته شد رفت مصر ولی مصر دعوت توحیدی و یک تاپرسی درش نبود این پیامبر باید به یک نحوی به امپراتوری مثل میرسید و به اون دربار میرسید تا این که در اون دربار تأثیر بذاره و اون دعوت الهی را به اونجا برسونه الله از حکمتش این چنین بود که به وسیله دین خودش را به فرعونیان برسانه و به آل فرعون برسانه حکمت الهیه و اینجا داره این قصه در مکه برای رسول الله بازگو میشه این قصه و داستان یوسف سوره یوسف در مکه پیامبر صلی الله علیه سلام نازل شده نه در مدینه ها. رسول الله صلی الله علیه و هنوز همجوار یهود نشده که و از تورات که چی هست در تورات چی گفته یوسف کی بوده یعقوب کی بوده مشرکی هم از این داستان ها نمیدوننن ولی که الله هست که از بهترین قصه های پیامبرانش را انتخاب کرده گزینش کرده و برای رسول الله صلی الله علیه و بازگو میکنه و جایت سیاره. الان آکن دوستان داره عوض میشه برادران یوسف. یوسف رو در چاه هم دختن، اومدن نزد پدرشون شب هنگام، قریم میکنن، استلابی میکنن، بهانه تراشی میکنن. یوسف کجاست؟ راهش کردن. که یک کاروان یه قافله ای بیاد، او رو از اون چاه در بیاره. و جایت سیاره، قافله و کاروانی اومد، فارسل وارد هم فادل ادالوا. شخصی رفته فرستادن که آب از چاه بکشه. مشکو رو میفرسته پایین در چاه. ببینه که سنگینه، نمیتونه بالا بکشه. بعد میبینن که بله بچه سالی نوجوانی در اون چاه قالو یا بشر هذا غلام بشارت بشارت میدن وجده میدن که بیایید که اینجا بچه‌ای در این چاه یک غنیمتی گیر اومده بچه اون موقع بردهداری بود میفروختن انسان فروخته میشد به اسارت گرفته میشد خرید و فروش برده بود قبل از اسلام این نظام نظام قدیمی بود کاری به اسلام نداره اسلام اومد مبارزه بکنه کسی که با همسرش در روز نمازم بستری کرد اول برده را آزاد بکنه یا خیلی از جاها شرع در مقابل ازای گناهی که شخص مرتکب میشه بزرگترین پاداش رو در آزاد کردن برده گذاشته بعد از اون دو ماه پی در پی روزه گرفتن بعد از اون صدقه دادن اول آزاد کردن برده در شریعت خیلی جاها اومده که شخص اگر مرتکب گناه شد اول برده آزاد بکنه بعد صدقه بده یا مثلا کفاره اون گناهش رو بده قال یا بشر هذا غلام این بچه‌ای نوجوانی و اسروه بضاعه پنهانش کردن به عنوان یک کالا خرید و فروش گفتیم میشه میشد برده به عنوان یک کالا پنهانش کردن که بقیه نبینن که بتونن بفروشن بقیه طمعش نکنن والله علیمون بما يعملون والله علیم بما يعملون خطاب به خطاب به من و شما و رسول الله صلی اللہ علیه وسلم رسول در مکه هست و خیلی از برنامه ها براش میشینن میبافن، توتهه میکنن، مکر و حیله و نرنگ میکنن ای محمد بدان که الله عالمه، الله علیمه والله علیم بما يعملون نسبت کار اونها الله دانا بود یعنی هدا میدونست که اینها این کارو میخوان انجام بدن الله میتونست جلوشون بگیره ولی نگرف الله داناست از عاقبت کار الله آگاهه باید این کار میشد تا یوسف اون درجه برسه و تو هم باید تو را برانن از مکه ای محمد آمادگیه برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم. باید تو را برانن از مکه بری همونطور که یوسف از فلسطین رفت به تو هم باید از مکه خارج بشی آمادگیه عاقبتت عاقبت بخیریت اون جایگاه والا اون مقامت در اونجا شک میگیره در مدینه اونجا نصرت الهی را به چش خواهید دید میبینی که الله چگونه تو را عزت میدهد این مژدگانی والله به ما يعملون هر کسی بخواد توته بکنه بر علی حق بخواد ظلم بکنه آخر میبیند که چگونه الله دست مظلوم را میگیرد و او را نصرت میدهد این مژدگانی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بشره به ثمن بخس دراهی من معدوده و شراوه و ای باعوه ما قادر تو رات رو بخوام باز بکنیم هزاران قصه دروغ درش می آویم از سر خودشون چند تا جمله اضافه کردن و از خودشون مثل قضی قصه کهف. که که سگالا گفتن چهارمی بوده پنجمیشون بوده چیشمیشون بوده اینجا بعض از مفسرین هم اومدن بنسبت آن چیزی که در تورات اومده گفتن که برادران یوسف بودن که برادرشون رو فروختن نکنید الان گفتیم داستان عوض شد برادران یوسف تو رو در چه انداختن اومدن پیش پدرشون اینجا الان قافله اومده اون قافله اومده، اون ظرف آبی رو در اون چاه انداختن که آب بکشن بحثی از برادران یوسف برادران یوسف کجا بودن اینجا که بودن خصوص این نامه‌هایی که می‌سازن و هایی که می‌سازن می ما یه سری چیزها رو می‌بینیم که اصلا نه با عقیده ای ما میخونه نه با اخبار و روایات مثل اینکه یوسف رو وقتی که به چاه انداختن از باب اینکه یوسف اونجا دلداری داده بشه الله بهش گفت که بله به تو موجه میدیم ای یوسف که چارده امام معصوم خواهند اومد یعنی چی چه ربطی به یوسف داره این خبر از کجا آمد؟ تو کتابای ما نیست این دروغ نزد ما چیز به اسم امام معصوم ما نداریم ما داریم اختیار و انتخاب داریم نبووت مقام انتخابی است الله انتخابشون کرده اون فیلم قدیمی که از یوسف ساخته شده هم که بحث یعقوب و دزیدن پیامبری بود اون نمیدونم زنباباش که میاد چرمی از پوست حیوا رو میگیره به دستش میپوشونه و بعد میگه این صدا صدای و نمیدونم این دست دست رو نمیدونم از این فیلم که قدیمی است ما بچه بودیم دیدیم همه دروغه داستان هایی هست که بافتن درست کردن و اصلا اساسی نداره پس اینجا اون کسانی که اومدن، کاروان و قافله اومدن یوسف را از درون چاه بیرون آوردن، پنهانش کردند که بقیه عل قافله نبینند، اونها بودند که وقتی وارد مصر شد، او را فروختند. این وجیه ترین قول مفسرین هرچند که بعضی مفسرین گفتن، گفتن که اینجا برادرانه یوسف بودن با توجه به روایت که در تورات اومده ولی که ظاهر سیاق این قرآن این چنین دلالت میده که اینجا خطاب این ضمیر شروهو اینها به اون مردمان اون کاروان و قافله ثمن این بخش با اندک قیمتی ناچیزی دراهم معدوده اندک درهمی با پول کمی او را فروختن و كانوا فيه من زاهدین و درشب کم توقع بودن زاهد بودن یعنی نیمدن این بچه‌ای به این زیبایی به این خوشرویی رو با قیمت گزافی گرانی بفروشن وقتی که مال خودت نیست خب ارزانش می‌فروشی که به دستش که نیوردی که رحمتش نکشی تلاش نکردی بره یافتنش مال خودت نیست دزدی یکی از نشانه های اینه سر خیابون میسه جوروقی دستشه بیار یا دمپایی دوزیده دوز از کنار در مسجد دمپایی 10000 ده 10000 تومان برات میفروشه خب دزده چطور میخری ازش حرامه جایی که انسان میدونه این مال حرامه مثل اون اموالی که مصادره میشه ما میدونیم مال مردمه درستی ما بخریم حرامه اینجا یوسف برده نبود یوسف لقید بود اونو از میون راه اُرو را گرفتن آزاد بود آزاد حق فروشش رو نداشتن کسی که آزاده ما اجازه حق و فروشش نداریم خب اینجا اومدن این انسانی که آزاد بود با اندک مبلغی او را در مصر فروختن تا زود از دستشون بره کسی نیاد ادعا بکنه که این فرزند من بوده یوسف هم خب تربیت شده یک پیامبره نیمت از راز و سر و زندگیش بگه که کیه چی شده آدم وقتی که دردش رو بگه سو استفاده میشه چقدر اصلا از دخترانی که ازشون سو استفاده میشه وقتی که میان با یک جوانی مثلا درد دل میکنن بعد اون جوانم سوء استفاده میکنه فیلمی میگیره کلیپی میگیره و یادت میکشه و از اون دختر به عنوان یک کالا هرطوری که بخواد بهره میبره داستان ها ما زیاد میشنویم یا میبینیم در خصوصا در جوامعی که در مجتمعی که پر از فسق و فجوره این قضیه را در یوسف قشنگ میبینیم به صراحت میبینیم یوسف نمیاد از خودش دفاع بکنه تا اینکه کسی درش طمعی نکنه این ادبها را داره الله یادمون میده چون هر کسی دل نیست درد و دلت با هر کسی نگو چقدر بودن؟ دوست بودن طرف رفته درد و دلش رو کرده بعد او را فروخته او را فروخته و این قضیه فروختن هم دیگر در جامعه زیاده خیلی هستن هم دیگر را می نقطه نقط نقطه نقط زعفت دست دیگران نده سبحانه کالا بحمدک سبحانه کالا بحمده صلی اللہ علی محمدین و علی محمد